گستاخی با رفتن با دیده خود است در یقین از خود است رفتن با دیده خود در یقین از خود است مولوی چنان که گفتدیم میگوید گوید دیده بکشا زین سپس با دیده مردم مرک این یقین از خود این اخوب آخو این در بن انسان پرزنت هست حاضر است فقط همیشه فوران این است که ایجاد گستاخی میکند، ویستاخو میکنه یعنی از برون از درون برون افشانده میشه پیش از اینی که وارد این گفتگو بشوم چون بررسی هفتخان هست این هفتخان را در دوره چاسانه ها زردشتی زرد و, و دستکاری کردند. اون هسته اصلی این داستان را به کلی مصخو تحریف کردن هستی اصلیش که خانه چهارم باشد درست هم در خانه چهارم به دیدار سی میرسد و این خانه چهارم خانه رو روبرو شدن انسان با اخو با درونش این بزرگترین بخش این داستان بوده است این خانه چارم خانه میان است آسمان چارم همه هایی که از هفت چهار هستن همیشه میان هستند و این خدا میان است میان انسان است میان هر چیزی میان هر نیست میان دو انسان است میان دوتا چیز است من وقتی یک چیز را میبینم این نظر من و اون چیز اینها به وسیله این اصل پیوند که این اخو پیوند داده میشه این فوق العاده ایده اندیشه لطیف در اینجاست که در این خانه چهارم است که رستم با خدا دیدار داره دیدار خدا همیشه نیایش است نماز است نماز با خدا در یک خانه بودن است با خدا هم خانه بودن است یعنی جفت بودن با خدا است این است که این در این خان خانه نیایش بوده است نیایش ما مفهومی را که از نیایش داریم این است که از تصاویری که از مسجد و اینها میگیریم میره بعد یک کسی سجود و رکوع و امثال اینها میکند نماز میخواند این اینها اصلا باجای نماز ایرانی ایرانیت، باجای عربی نیست که این معناش اصلا این نیست نماز معنیش یعنی مقربت یعنی هم خوابی هم بستر شدن یعنی اشوارجی در دلایورات شدن تو مسجد کسی با الله هم خواب نمیشه هم بسکر نمیشه یعنی با هم جفت نمیشه این اینجا باعثی بو خدا و انسان با هم عشق ورزی بکنه این است که مفهوم نماز مفهوم نیایش و مفهوم دین پدیده دین به کلی در فرهنگ سیمرقی با اسلام با زردشتیگری با مسیحیت فرق داشته است نیایش بحث نم رقصیدن با خدا بوده است بحث بوده است که خدا موسیقی میزده است نای میزده است نای نای به است که برای انسانها نای میزند و همه را میعافرنده با نایش این است که انسان با این نای میرقصد. انسان این نای است ببینید اصلا این مفهوم نای کسی اول محصنبی که خیال می ما با مفاهیم روزمان پوری به فکر علت و معلول می افتیم اونها اصلا همچین فکری را نداشتند. این مفهوم جفت و یوخ بودن از تصویر دیگری در روابط در ذهن آنها میآورد دف و دست چنانکه مولوی هم میگوید با همدیگر یک رنگ را میزنند یک آهنگ را میزنند نی و ناعی با همدیگر یک نوا میزنند این اینها یوقند اینها جفتند م... اینها یکی علت نیست که معلول خدا در من نمیدمد من و خدا با هم مید آهنگ می‌سازیم. این ایده هست که ذهن ما همیشه بارونه نمیفهمد. ما از ذهن عامل و معمول حاکم و محکوم این،, این چنین مفهومی در ذهن ایرانی از خدا و انسان یا از خدا و گیتی نبوده است. خدا و گیتی با هم دیگر می آفریدن. خدا و انسان با هم دیگر می آفریدن. با هم دیگر نیایش می کردن. اون یکی موسیقی میزد انسان میرخسید این شعر مولوی به بیان این نماز است ببینید در پرهنگ ایرانی جشنگاه نیایشگاه بوده است اینجا رو که فعلا مسجد میگن کسی نمیرفت سجده کنه. اینجا را میرفت موسیقی بزند و برقصد با خدا بعد رخشید و خدا که کسی نمی رود اونجا یک حیول قولی رو را جلشه راست و دست به سینه ب و بلان و اینها نه خدا محبوبه است محشوب است خدا موسیقیزن است با من آهنگ می سازد تا من خوشحال باشم جشیم ساز است این فرق دارد. این اشترا و عیش چون نماز آمد. این نماز. این اشرت و اش چون نماز آمد وین دردی درد آب دست آمد این با چی شروع می شود؟ با این شروع می شود که ای مترب جان چو دف به دست آمد مترب جان کی است این اخوش، این سیمرغ است. ای مترب جان چو دف به دست آمد این پرده بزن که یار مست آمد تون چهره نمود اون بوت زیبا تون چهره نمود اون بوت زیبا ما از سوی چرخ بوت پرست آمد ما سیمرغ است ذره او جهان به عشق آن خورشید خورشید سیمرغ است تولد از ما چهره دویم است سیمرغ ذره تو جهان به عشق آن خورشید رقصان ز ادم به سوی هست آمد. انسان به هستی آمدن یعنی رقصیدن. و ببینید این خدا ورتن. ارتا پرورد و فر پرورد ورتن. ورتن همون کلمه بشتن است که بنای گشتن داشت. وقتی بشتن به معنای چیست؟ به معنای رقصیدن. هستی یافتن جنبیدن است، رقصیدن گشتن، گردیدن، چرخ زدن، رقصی که مولوی ها میکنن این به هستی آمدن است ذر و جهان به آن خورشید رقصان ز ادم به سوی هست آمد این پرده بزن که مشتری از چرخ مشتری سیمور است، خورم است این پرده بزن که مشتری از شرق از بحر شکستگان به پست آومد، این پرده بزن که مشتری از چرخ از بحر شکستگان به پست آومد، این, این اشرت و عیش چون نماز آمد. این اشرت و عیش چون نماز آمد. این با مشتری با خورشید با ماه رقصیدن که آمده است با پس با ما برخشاد این اشاتو و چون نماز آمد وین دردی درد آب دست آمد ببینید این است که ما در یک بحث بسیار مفصل راجع به این خانه چاروم صحبت خواهیم کرد در این خانه چاروم است که دیده می شود مفهوم پهلوانی به کلی در تضاد با مفهوم پیغمبری بوده است برای همه خاطرم موبدای زردوشتی این را ت... مصخ و دستگاری کرده کردم. در اینجاست که انسان و خدا با هم می این مفهومی که ایرانی از خدا داشته است اون وقتی این مفهوم الان برای ما یک چیزی چه چیزی است که اصلا غیر ممکن است ماحال است این است که این, این مسئله مسئله هفتخان را با این مفاهیمی که ما از اسلام و زردشتگری و اینها در دست داریم و با این مفاهیمی که ما امروز از غرب میگیریم اصن بارونه میفهمه چیزی نمیفهمه در صورتی که این مفهوم این مفاهیم پهلوانی مربوط به چی هست و مربوط به پیدایش اخو پیدایش سیمور زادن یعنی سیمرغ از انسان است که این همیشه با خیرگی و گستاخی همراه است گستاخی گستردن اخو یعنی تخم زندگی در خود می باشد گسترد، گستردن هستی خود انسان می باشد مر دوم مر مر تخم تخم توخ مردم است انسان تخم خداست تخم جفت است مر است. مر،, ت... مر سیوسه تا خدای ردان اشوان بوده یعنی پیدایش خدا در همه شکل هست. کریستال خدا تمام درویه های خدا سی و سطح خدا هست خدا های در گسترش در زمان پیدا میکنه خدا چیزی نیست که تو آسمانون خدا سپنج میشه دیتی میشه بس. پس گستردن هستی خود مردم خود انسان این گستاخیست گستاخی روزی پیدایش مییابد که انسان با دیده خود برود و در شاخ و دردام نیفتد با نگاه چشم خودش زندگی کند با باخرد خودش بیاندیشد. ببینید اینجا اخو در ما پیدایش پیدا میکنه این لایه های تابعیت از دیگران را خورد و خمیر میکنه این رو گت میاد بیرون خدا از ما میاد بیرون با خرد خودش بیاند و نه تنها راه خود را در بی راه ها و در کج راه ها بیابند و نه تنها میان راه های موجودی را برگزیند همه اینها مسئله نیست بلکه راهی تازه نیست برای خود بسازد اخو خدا در هر جای شکل دیگری دارد زالزر که پیکریابی سیمرغ است به فرزندش رستم میگوید زالزر به فرزندش رستم میگوید که تو در پی مودن از درون هفت و اما هفت گیجگاه هفت و تنهای تو تنها به خودت متکی هستی. یعنی به این اخو کسی که به خود تکه میکند تنها میشود. تو از وجود خودت چیزی را تا کنون ای که دیگران در تو دیدن تو توده یا نکوحیدم تو از وجود خودت تا کنون چیزی را چیزهایی را دیده ای که دیگران در تو دیدن و توده یا نکوهیدند اون چرا دیگران در تو دیدند و ستودند در تو پروراندند در تو گذر ساختن اون چرا در تو دیده اند ولی نکوهیده اند در تو خوشگانیدن. خار چاستن. اون چرا در تو ندیدن و نتوانستند ببینند در تو سوختن. تا رو سوخته کردن. تو از خودت نیستی. اینها رو زال درسته میگه. تو از خودت نیستی. تو خودت رو اونسان که در گوهرت هست نگسترده ای. بلکه این دیگران هم که تو را با بینش خود از تو گسترانیدن ببینید این گستاخی دیگران در تو چیزی را که میخواستن گستردن تو در این هفتخان با نگاه از چشم خودت خودت را کشف کن و اون چرا با چشم خودت در گوهر خود میبینی بپروران ببینید زال زر فرزند خدا جفت خدا پیکریابی سیمور ارتا. خدای ایران این حرفا را میزند نمیگوید قم فنزر برخی دو بترسان نمیگوید این حب را ببر با بگو نه میگوید تو خودت خودت بشو اون چرا دیگران در تو میبینند فقط سطیات وجود تو برای حفظ منافع و قدرت آنها تو در این راه نه راه بر و پیشوا داری که راهنمایت نمایت و نه در راه هایت سنگ های نشان و علامت و نشان هست که از آنها راستا و سوی حرکت خود را روشن ببین سنگ نشانی نیست در راه تو نیست که تو را در دو راه ها روشن کند که از این, از این طرف بپیچ صاحب میگوید سنگ نشان زهارت منزل چه آگه است؟ از دیر و کعبه چند بپرسم نشان دوست این میگه دیر و کعبه و اینها همه سنگ نشان هستن از دیر و کعبه چند بپرسم نشان دوست تو خودت را از این پس داور و سنجنده اندیشه ها و کردارهای خودت هستی تو از امروز بعد خودت میزان خودت هست هیچ کس برای از این پس تاریکی ها رو روشن نمی کند و معزرات تو را حل نمی کند ببینید این خدا به انسانی را داره می گوید. نمی گوید من این قرآن و این گاتا و این تورات و انجیل را آوردم نه می گوید هیچ کس برای از این پس تاریکی ها را رو روشن نمی کند و معزرات تو را حل نمی کند همه چیز از این پس برای تو تاریک است ولی چشم تو، خرد تو هست که یوغ یا اصل روشنی دید چین؟ پیسه جمعانی اینا اصل چشم بوده. گوهر تو مردمگیاه مردمگیه هست گوهر تو مردمگیه مردمگیاه چی بود؟ بهروج به هستنم بهروج و سیمر جفت, جفت بهرام و سیمر همین اخوز که در تو هست که این میزانش، این،, این جی که زندگی باشد معنای هم یوخ دارد که همین جفت باشه هم معنای شاهین ترازو دارد. یعنی چی؟ یعنی تو خودت ترازو خودت زندگی ترازو خودت زندگی تو خودش ترازو خودت. این مضمون را مقرهی در قذلی بسیار زیبا و جرف می سراید. میگوید آرپون را شم و شاهد نیست از بیرون خیش خونه انگوری نخورده بادشون هم خونه خیش خون خودشون بادشون هم. که میخورن مست میشن هر کسی اندر جهان مجنون یک لیلی شوند. آرپون لیلی خیشو دم بدم مجنون خیش ببینید رستم در خان چاهرم آرفان لیلی خویش و دم دم مجنون خیش این جفت شدن رقصیدن انسان با خدا هم آوا شدن و هم رنگ هم ریتم شدن و هم آهنگ شدن انسان با خدا یک بهروز و سیمر لیلی و مجنون وی و اینها ببینید این مفهوم نیایش چی هست ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این بعد از این میزان خود شد شو. تا شوی موزون خیش ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این خدا این با قرآن تو را وزن نمیکنم میزان نیست گاتا میزان تو نیست فورات میزان تو نیست انجل میزان تو نیست تو خودت میزان خودت هستی ساعتی میزان آنی ساعتی موزونی بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون نخیش آقا اینقدر منتظر قیامت و منتظر صاحب زمان و اینها نمانید شما خود دون نفخ و سرخ هستید خدا شما خود دون قیام آبستان به قیامتید من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان مردگانی که در اجتماع ما هستند من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان هر زمانم عشق جانی میدهد زبطون خیش ببینید این لیلی و مجنین درون این بهروز و سی مرغ درون که اخونا میده میشود شود، اینها هر زمانی اش جانی میدهد زفصونه از این پس چشم تو و جان تو میزان تو هست جی جی زی هم معنای میزان دارد هم معنای زندگی ببینید فر، این فرهنگ ما را نشناختن ثبت میشود که این واجه ها را این معانی که ما با زور از خارج میارن تو میزان خودت هست زندگی میزان خودش هست این یک چیز عادی در فرهنگ ما بوده است حالا ما میریم از فلسفی قعد دعایی می که این را به زور بیاریم در مقابل اسلام که اونها نمی پذیرم. از این پس جان تو این خودت هستی که کردار و گفتار خودت و ها و رویدادها را رو میکشی و ورد میکنی و همه چیزها از این پس موزون تو میشوان تویی که ارزش ها را در جستجو و پجوهه و آزمایش معین اگر تو از این پس هیچ کس و هیچ مرجعیت دینی و اخلاقی و هیچ قدرتی داوری نمی تو تو را, را هیچ کس نمی بیند که تا پیش از او بازیگری کنی تو را ببینید در هفت اصل مطلب این است این در این هفت خان در هفت خان تنهاست کسی نیست که او را ببیند که بگه به به کاری کردی آفرین به او بگوید یا او را بینه بگوید آخا چه کار بدی کردی نه تو را هیچ کس نمیبیند که تا پیش او بازی کردی کنی و نقشی بازی کنی اینجا تاعت رو نیست که مورد پسند او واقع شد. نقش بازی کردن در انظار مردم یا در انظار مؤمنان و هم حزبیان و هم گروهی ها و هم بطنی ها و هم حزبیها ها معنای بزرگ بودن حقیقی که در خود از خود بزرگ بودن است از خود زیبا بودن است از خود نیک بودن است از در تو از بین میبره این نقش ها این نقش بازی کردن در اجتماع این را از خود بزرگ بودن را از تو میبره از خود زیبا بودن را از بین میبره از خود نیک بودن را از بین میبره این, این نقش بازی ها پاکی و صداقت که این راستی باشد که راست بودن در برابر چشم خودت هست از بین می راستی در برابر چشم خودت باید باشد هنر برای تو فضیلت و برتر جویی و سبقت جویی بر دیگران در پیش انظار مردم در تماشاخانه اجتماع در یک تقوا و یا یک ارزش اخلاقی نیست ببینید معنای هنر چیست هنر نظر ایرانیان و بس مزخره میکنن اصلا نمیدانن معناه هنر چیه وقتی میگن این معناه راسیست و فاشیست و شووینیست و ناسونالیست اصلا نمیدانن هنر را ایرانی چی میدانن وقتی این ادعاهای بیهوده رو میگنن هنر برای تو فضیلت و برتری جویی و سبقت جویی دیگران در پیش انزار در تماشاخانه اجتماع در یک تقوا و یک ارزش اخلاقی نیست چنین فضیلتی و تقوایی ایجاد رشک در اجتماع میکنه وقتی هنر این باشه که باشد تویی باشه خب این دیگری رشک میبرد بین و این رشک فضیلت یا هم و رشک به را فضیلت رشک ایجاد میکند هر فضیلتی هر فضیلتی زهرانوز میشه رشک اصل همه یک کنتوزی همراه درست همراه و مرازمه چه میشه فضیلت میشه فضیلت و رشک جی و عجی هستن مگر زردش نمیخواد با زده عجیب بجنگد. گرد خیلو. این فضیلت و رشک ببینید چی زار و برستن میگوید میگوید این جی تو رشک برافصل با فضیلت اینجی اینجی که تو میخوای اجرا کنی برافصل عجیب میشه که با هم میام درست درست فضیلت و هنر برافصل گوهر دیوی پیدا میکنن و خودش رشک را برمیانگیزد فضیلت و هنر و رشت همزاد متضاد میگردد ببینید این چیزی که در دوست میخواست به جنگت باز خودش ایجاد می کند. به عبارت دیگر احورا خودش اهریمن را با خود میآورد. ولی درست این رشک ها هستن که ادیان و مذاهب آنها را مقدس می حالا این رشک مقدس را که یونانی ها اگون می نامیدن. اگونال این ایرانی هیچوخت مقدس نش... نمیشمرد میترا گرایی و یهودیت و اسلام خشم را غضب را که بون همه قهر غهرورزییاست در خداشون مقدس ساختن خشم مقدس غضب مقدس یونانیها رش یا اگون را مقدس ساختن ببینید این اگون اگی که عجیب باشد درست پیشوند باشد فرهنگ سی فرهنگ زالزری زالذر که الان با رستم صوبت میکنه فرهنگ سی نه رشک را مقدس میسازد نه خشم را ببینید این تفاوت فرهنگ زالذری این, پرهنگ، این سی، سخن زال با رستم فرهنگ این فرهنگی که کاملا در مقابل یونانگری و در مقابل این ایده اگونال اساس سیاست و اقتصاد و تما تمام پدیده های اجتماعی در غرب شده هست. از حدبازی های اولمپیک گرفته تا رقابت های اقتصادی و سیاسی و هزبی و اینا. اساس این ها فرهنگ ایرانه میگوید نه این رشک, رشک به هیچ رایت مقدس نیست. از این رو رستم در هفتخان دنبال هنریست که رشک مقدس را ترک میکنند. رستم نیاز به هنری دارد که رشک نیافرینه که بنیاد کینتوزه ها نباشد. در این ادیان هنر اخلاقی، آلوده به رشک و رقابت و خاست پیش افتادن بر دیگری در می میشود. نیک بودن زیبا بودن بزرگ بودن مسابقه گذاشتن در بازار اجتماع و سیاست و دین می شود هیچ کس چشم دیدن آن را ندارد که دیگری خوبتر از او باشد زیباتر از او باشد بزرگوارتر بار، بزرگ از اون از به مردمون باشد و می کوشد که خوبی و زیبایی و بزرگی را تا می تواند در همه زشت و مست کنند و بنکورد و تاریک سازد تا چی؟ تا خودش مسابقه را از دیگران ببره وا این شده از اخلاق و سیاست و اقتصاد و دوین ما در تمام دونی حالا فرق نداره همین عدیان همه گرفتار همین, همین رشک مقدس یا خشم مقدس هست تو ای روستان با این قایت به هفتان برو تا گمنام باش تا کسی نباشد که دلیره های تو را به شکل مسابقه با دیگری ببیند ببینید مسئله هفتان مسئله اساسی شد این یک افسانه نیست این چرند و پرندهایی که به عنوان تحقیقات دانشگاهی همه جامعی سستاین اینها را باید لوله کنن بریزن توی مستراح. اینها از این پرنگ ما به ما چی گفتند؟ غیر از یک مشخه چرند و برند تو با این قاید به هفتخان برو تا گمنام باشید تا کسی نباشد که دلیره های تو را به شکل مسابقه با دیگری ببیند و به دین علت مشهور و بلند آواز شد من زال تو را برای بازیگری در تاعتر اجتماع نبربردم تو هم ای رستم اجتماع را به تماشاخانه و مردمان را به چان و چشم را به تماشاچی بودن کاسته نکن نکن تو این راه را نمیری روید تا, اش، تا با اعمالت و هنرهایت مشهور شد و کسی نیست که تو را در دلیری هایت بستاید و در سستی هایت بنکن کسی و مرجعی و قدرتی تو را و کارهایت و اندیشه هایت را داوری نمی کنه ببینید این خیلی مهم تو در این حفظ کسی تو را داوری نمیکنه. این یکی از مقولات فوق العاده عظیم است ما هی فریاد حقوق و بشر را نمی اصالت و خود و اینها سؤالات خودو علیه مش ترجمه میکنیم نمیفهمیم فرهنگ خود ما چی ما میگه تو را هیچ هیچکس از خودا داوری نمی میزان میزانی هم هیچ کس برای تو نمیخواد نه قرآن نه گاتان نه تورات نه انجیل نه هیچ گونا میزان نه مارک نه میزان تو داوری کردن ببینید اینا نگوید بازی با الفاظ واجه ها رو ما در دقیق در فرهنگمون فوق العاده جرف و کوشارجاس ما اینها رو ناچیز میگیریم چون که فرهنگ خودمون به فرهنگ خودمون ارزش نمیدیم داوری کردن که داتو بره باشد حمل کردن داتو بردن داتو باشد ببینید داتو دات و بره تنها جعل و گذاردن میزان یا وضع معیار و قاعده و قانون یا محاکمه کردن و تشخیص نیک و از هم با این قوانین و قواعد و معیارها نیست این و آوری بیش از این داره داتا معناش هم آفریدن و حسب دیبخشن و هستیافدن نیست با قانون گذاشتن با معیار گذاشتن با قاعده گذاشتن با محاکمه کردن با داوری کردن می آفرینیم حسنی می بخشیم حسنی میدیم حسنی می یابیم ببینید بابکا ما نینسکی ما ما مشکل شد این نیست که کسی من رو داوری بکنه نه با داوری کردن به من هستی من را میگیرد می و هستی میبخشد هستی را که درش میخواهد میبخشد داوری هم حق آفرینندگی قاده و معیار و هم هستی یافتن با آن و هم هستی دادن با آن هست و هم حق تشخیص نیک و بد زشت و زیبا پسی و بزرگی دادن هست داوری هم این است و هم چیز دیگر است. ببینید این خیلی مسئله پیچیده شد میگوید تو به حدقان میروی تا کسی حق نداشته باشد تو را داوری بکن تا خودت خودت رو داوری بکن کل حقوق بشر در این کل سالت انسان در این هر. و این پجعوهش های دانشگاهی تا حالا یک ذره از این معنا نفهمیدم هی در دا تحقیقات دات دانشگاهی میزنم آنان که تو را در اجتماع داوری میکنن نه تنها خوبی بدی را در تو از هم تشخیص میدهند بلکه خوبی و بدی و زشتی و زیبایی و پستی و بزرگی را نیز در تو میآفرینند و حق از خود بودن حق نیک بودن از خود حق بزرگ بودن از خود حق دیدن با چشم خود حق اندیشیدن با خرد خود را از تو مسئله؟ حقان این رو به ما میگوید حقان افسانه نیست رستم پهلوانی ایران از ست تا بر بالاتر است ما چه نیازی داریم که برمیم از دیگران افکار بی ارزش رو قرض کنیم به زور یک چهار تا کلمه بیاریم این پیش پای من افتاده است این که داوری همیشه به نزاع و جدال و اعتراض میکشد از کجاست از اون روز که آنکه داوری شده ناخداگاه در می‌آید که حق از خود بودن از او گرفته شد و درست داوری کننده حق از خود بودن را پیدا کرده این برای این خاطر داوری میشه جنگ و دعوا تو حق نداری ببینید این خیلی مسئله فرهنگ ما چی میگوید؟ ما اصیر چی شدیم؟ تو حق نداری امر به معروف و از منکر بکنی چون تو با این کار حق از خود بودن. حق از خود نیک بودن. حق از خود اندیشیدن. حق با چشم خود دیدن را دیگری میگرید.